کتاب آخ بازخانی مقتل حسین ابن علی علیه السلام سکینه گفت خواب دیدم گویی پنج شطر از نور روی به من آوردند بر هر شطری پیرمردی نشسته بود و فرشتگان گرد آنها بگرفته بودند و خادمی با آنها راه می‌رفت. شوتران بگذشتند و آن خادم به طرف من آمد، نزدیک من رسید، گفت، سکینه، جد تو بر تو سلام میفرستد، گفتم، سلام بر او باد، ای فرستاده رسول خدا، تو کیستی، گفت، خادمی از بهشت، گفتم، این پیرمردان مردان سوار کیستند، گفت، اول آدم صفوت الله هست، دوم ابراهیم خلیل الله، و سوم موسای کلیم الله و چهارم ایسای روح الله. گفتم آن که دست بر محاسن دارد و افتان و خیزانه است کیست؟ گفت جد تو رسول الله هست. گفتم به کجا خواهند رفت؟ گفت سوی پدرت حسین. روی به طرف او کرده دویدم تا آن چه ستمکاران پس از وی با ما کردند با او بگویم. در این میان پنج کجاوه از نور دیدم می آین. و در هر کجاوه زنی بود گفتم این زنان کی گفت اولی حوا مادر بشر است دوم آسیه دختر مزاحم و سوم مریم دختر عمران و چهارم خدیجه دختر خویله و پنجمی که دست بر سر نهاده افتان خیزان از جده تو فاطمه است دختر محمد مادر پدرت گفتم به خدا قسم به او بگویم که با ما چه کردند به او پیوستم و پیش او ایستادم گریان گفتم مادر به خدا حق ما را انکار کردند مادر به خدا جمعیت ما را پریشان ساختند مادر به خدا حریم ما را مباه شمردند مادر به خدا پدر ما حسین را کشتن گفت دیگر مگو سکینه که جگر مرا آتش زدی و بند دلم را پاره کردی این پیراهن حسین است با من و از من جدا نشود تا به لغای پروردگار رسم از خواب بیدار شدم و خواستم این خواب را پوشیده دارم به کسان خود گفتم اما میان مردم شایع شد و چهار روز از ماندن ما در دمش گذشته بود هین دختر عبدالله ابن آمر همسر یزید گفت در بستر خفته بودم در آسمان را دیدم گشوده و فرشتگان دسته دسته نزد سر حسین می آمدند و سلامش می گفتند. در آن میان پاره عبری دیدم از آسمان فرود آمد و مردان بسیار بران بودند و مردی درخشند روی مانند ماه در میان آنها بود پیش آمد و خم شد و دندانهای حسین را ببوسید و می گفت ای فرزند ترا کشتند می شود ترا نشناخته باشند از آبنوشیدن نوشیدن تو را من کردند ای فرزند من جد و پیغمبرم و این پدرت علی مرتزا و این برادرت حسن و این ام تو جعفر و این عقیل و این دو همزه و عباسند و همچنین یکی یکی خاندان را شمرد ترسان و حراسان از خواب برجستم و روشنایی دیدم از سر حسین میتافت در طلب یزید شدم او را در خانه تاریکی یافتم روی به دیوار کرده و میگفت مالی للحسین، مرا با حسین چه کار؟ چه زیان اگر رنج و آزار او را تحمل می کردم و او را در سرای خیش می آوردم و هرچه می خواست در فرمان او می گذاشتم، هرچند پادشاهی مرا وحن بود، قرابت رسول خدا را مراعات کرده بودم، خدا لعنت کند ابن مرجان را، راه چاره بر او بست و، به کشتن او مرا مبغوظ مسلمانان کرد و تخم دشمنی من در دل آیانها کاشت و بر و فاجر را دشمن من کرد و سخت اندوهگین بود خواب را به او گفتم سر به زیر انداخت محمد ابن عبدالرحمن گفت رأس الجالوت مرا دید و گفت میان من و داوود هفتاد پشت فاصله است و هرگاه یهود مرا بینند تعظیم کنند. شما میان فرزند پیغمبرتان و پیغمبرتان یک پدر فاصله است. او را کشتی؟ روزی علی ابن الحسین بیرون آمد و در بازار می منحال ابن امر کوفی با او باز خورد و گفت شب بر تو چون گذشت یبن رسول الله گفت مانند بنی اسرائیل در آل فرعون زبهون و زبهون ابناه و یستهیون نساه مردان من را میکشند و زنان من را زنده نگه میدارند. ای ای منحال عرب می بر قبائل دیگر که محمد عربی بود و قرش بر عرب فخر می کند که محمد از ایشان بود و ما که خاندان اوییم گرفتار و کشته و آواریم ف انا لله و انا الیه راجون از این مصیبت که بر ما گذشت یزید <تصفيق> حرم حسین را بخواست و پرسید اینجا بمانید دوست در دارید یا به مدینه بازگردید و جایزتی گرانبه ها به شما دهم گفتند اول باید بر حسین ازاداری کنیم زینب نزد یزید فرستاد و رخصت خواست برای برادرش مجلس ازابر برپای دارد یزید گفت هرچه خواهید کنید پس ها و خانه ها خالی کرد در دمشق و آنان را در دارالهجار فرود آورد و هر روز زنان بسیار نزد ایشان می آمدند و هر زن قرشیه و حاشمیه جامعه سیاه پوشید و بر حسین شیون و زاری کردند هفت روز هند همسر یزید شیون و زاری کرد و جامه چاک زد و از پرده به در آمد پای برهنه و سوی یزید شد و یزید در مجلس خاص بود و گفت یزید تو فرمودی سر حسین را بر در سرای من بالای نیزه کنند و یزید بدان وقت نشسته بود تاجی بر سر داشت گوهرآگین از دور رویاقوت و جواهر گرانبها چون همسر خود را بر آن حال دید بر جست و او را بپوشید و گفت هند بر دخترزاده رسول خدا بگریزاری کن خدا ابن زیاد را بکشد که عجله کرد و پس از آن اهل بیت را در سرای خاسخیش منزل داد و آن سرا پیوسته به سرای یزید و هر صبح و شام که تعام میخورد علی ابن الحسین را نزد خود به تعام مینشانید چون زنان حسین در آمدند زنان آل ابی صفیان پیش باز رفتند و دست و پای دختران رسول را ببوسیدند و زاری کردند و بگریستند و سه روز ماتم گرفتند. یزید میخواست علی ابن الحسین را به بحانهی بکشد او را نزدش میبردند پیش روی خود میستندش و با او به سخن میپرداخت شاید کلمهی بر زبانش گذرد و بحانه کشتن او گردد روزی علی ابن الحسین را با امر ابن حسن بخواند بیامد و امر پسر خردسال بود گویند یازده ساله یزید به او گفت با این خالد جنگ میکنی امر گفت مرا کار دیده و او را هم تا جنگ کنید یزید او را به خیشتن چسبانید و گفت شیر را بچه همه ایمانت بدون یزید به علی ابن الحسین گفت عجب از پدرت دو فرزند خود را با هم علی نام نهاد گفت پدرم پدرش را دوست داشت چند بار به نام او نامید و علی تسبیح کوچکی در دست داشت در بین سخن با انگشتان میگردانید یزید گفت من با تو سخن میگویم و تو با من تكلم میکنی و صبهه میگردانی این چگونه روا باشد گفت پدرم برای من هدیث کرد از جدم که چون نماز بام داد بگذاردی سخن نگفته صبح بگرفتی و گفتی اللهم انی اسبحتو اسبحك و احمدك واهللك واكبرك و امجدكه به عدد ما ادیر بهی صبحتی خدایا صبح میکنم امروز را و تسبیحت میکنم و ستایشت میکنم و اقرار به یگانگیت میکنم و تکبیر میگویمت و بزرگ میشمارمت به شماره این دانه های تسبیح که میگردد این دعا میخند و صبح میگردانید و هر سخن که میخواست میگفت غیر از تسبیح و میگفت که این صبح گردانیدن ذکر محسوب است و من در پناه آنم تا شب به بستر روم و چون در بستر میرفت، رفت همون دعا میخواند و صبح زیر بالین می نهاد و برای او تسبیح محسوب می گردید از وقتی تا وقتی و من در این کار اقتدا به جد خیش کردم یزید بارها به او گفت من با هیچ یک از شما سخنی نمیگویم. مگر جوابی میدهید دهید مقنع <متصفح> علی بن الحسین گفت یزید مجلس شرب می ساخت و سر حسین را پیش روی خود می گذاشت و می نوشید و می نوشاند روزی سفیر پادشاه روم در مجلس در آمد و او از اشراف و بزرگان روم بود گفت ای پادشاه عرب این سر کیست؟ یزید گفت را با این سر چه کار؟ گفت چون به کشور خود بازگردم شاه مرا از هر چیز که دیده باشم بپرسد خواستم خبر این سر نیز بدانم و بگویم تا در شادی و سرور با تو شریک شود یزید گفت این سر حسین ابن علی ابن ابی طالب است رومی گفت مادرش کیست؟ گفت فاطمه دختر رسول خدا ترسا گفت دین من بهتر از دین شماست پدرم از نبیرگان داوود است و میان من و او پدران بسیار است ترسایان مرا بزرگ دارند و خاک پای مرا به تبرک برند شما فرزند دختر پیغمبرتان را میکشید با اینکه یک مادر میان است پس این چه دین است که شما دارید آنگاه گفت دریایی است یک سال راه است و در آن دریا زمین معمور نیست مگر جزیره آباد در میان آب هشتاد فرسنگ در هشتاد فرسنگ شهری در زمین بدان بزرگی نیست و از آنجا یاقوت و کافور آرند و درختان آن عود و انبر است و ساکنان آن دین عیسی دارند و جز پادشاه نصارا را در آنجا تصرف نیست و کلیسا بدانجای بسیار است بزرگتر از همه کلیسای حافر است در مهراب آن حقی آویزان است زرین و سمی در آن است گویند این سم آن خری است که عیسی وقتی بر آن سوار شد و گرد آن حقه را به دیبا آراستند و هر سال گروهی ترسا به زیارت آن روند و بر گرد آن تواف می کنند و می بوسند و آنجا حاجتها از خدای خواهند با سم خری که آن را سم خر عیسی پندارند چنین کنند شما دخترزاده پیغمبرتان را میکشید چه شوم مردمید شما و چه ناببارک دینیست دین شما یزید گفت این نصرانی را بکشید که مرا در کشور خود رسوا نکند. چون ترسا دریافت گفت دوش پیغمبر شما را در خواب دیدم. می گفت ای نصرانی تو اهل بهشتی و از سخن او مرا شگفت آمد و بر سر پدرم را به سینه چسبانید و میبوسید و می تا کشته شد. زنان شهادت پدران را از فرزندان خردسال پنهان می داشتند و میگفتند پدرانتان به سفر رفتند و همچنین بود تا یزید آنان را به سرای خیش درآورد. آورد حسین را دخترکی خورد بود چهار ساله شبیه از خواب برخاست سخت پریشان گفت پدرم کجاست که من اکنون او را دیدم چون زنان این سخن بشنیدند بگریستند و کودکان دیگر هم و شیون برخواست یزید بیدار شد و پرسید چه خبر است؟ تفحص کردند و قضیه باز گفتند یزید گفت سر پدرش را نزد او برید برام سر دستمالی افکندند و آوردند و پیش آن دختر نهادند روپوش از آن برداشتند گفت این چیست؟ گفتند سر پدرت آن دخترک را دل از جای برکنده شد. آن را از تشت برداشت و در دامن نهاد و می گفت کیست که تو را به خون خذاب کرد؟ که رگ گلوی تو را برید؟ پس از تو به که امیدوار باشیم ای پدر دهان بر دهان پدر نهاد و گریهی سخت کرد چنان که بیهوش افتاد او را حرکت دادند از دنیا رفته بود چون اهل بیت این بدیدند صدا به گریه بلند کردند و داغشان تازه شد و هر کس از اهل دمشق بران آگاه شد زن یا مرد گریان شد. و نماند کسی مگر یزید را دشنام داد و عیب گفت و ترک او کرد و نزدیک بود مردم در سرایش ریزند و او را بکشند مروان آگاه گردید و گفت مصلحت نیست اهل بیت حسین را در این شهر نگاه داری برگ سفر بساز و ایشان را سوی حجاز فرست یزید به علی ابن الحسین گفت اگر خواهی نزد ما باش و با تو نیکی کنیم و اگر خواهی تو را به مدینه بازگردانی گفت ما را به مدینه بازگردان که جد ما بدان شهر هجرت فرمود یزید با علی ابن الحسین خلوت کرد و به او گفت آن سه حاجت که تو را وعده دادم بگوی تا برآورم. و یزید علی ابن الحسین را وعده داده بود سه حاجتش برآورد. گفت اول آن که سر پدرم را به من نمایی که از آن توشه برگیرم دوم آن که هرچی از ما گرفتند بازگردانی سوم آن اگر مرا خواهی کشت کسی را با این زنان به حرم جدشان فرستی یزید گفت اما روی پدرت هرگز نخواهی دید و اما کشتن تو از آن درگذشتم. زنان را دیگری به مدینه باز نگرداند مگر تو و آنچه از شما بردند من چند برابر عوض آن بدهم گفت مال تو را نخواهیم و آن ارزانی تو باد آنچه را از ما گرفتند خواستم که چرخ نخریسی فاطمه دختر محمد و مقنعه و گردنبند و پیراهن او در آنها بود یزید فرمان داد آنها را بازگردانیدند و خود دویست دینار بیفزود و علی ابن الحسین آن را بر فقرا انفاق کرد و یزید به او گفت بندگان اهل عراق شما را به قطر رسانیدند و من از خروج ابی عبدالله و کشتن وی آگاه نبودم خدا پسر مرجانه را زشت گرداند به خدا سوگند اگر من بودم و پدرت هرچه میخواست میپذیرفتم و تا میتوانستم مرگ را از او دور میکردم اما خدا چنین فرمان کرده بود و چون به مدین بازگشتی از آنجا سوی من نامه نویس و هر حاجت که داری بخواه. یزید به نعمان ابن بشیر که از صحابه رسول خدا بود گفت برگ سفر این زنان را بساز هرچه شایسته و مردی از شامیان امین و پارسا برگزین و, و با ایشان بفرست و سواران و پاسوانان همراه ایشان کن. آنگاه لباس و عطاها داد و مشاهره و انعام مقرر کرد. و خود نعمان بشیر را همراه ایشان کرد با سی مرد سوار و گفت شبانه آنها را ببرید و تو خود اندکی دور از ایشان و در پیش ایشان باش چنان که چشم تو آنها را ببیند و اگر در منزلی فرود آیند دورتر فرود و خود با همراهان بر گرد ایشان پاسمان باشید و در جایی دورتر فرود آیید که اگر یکی از ایشان حاجتی خواهد شرم ندارد تجاوه ها آوردند و آراستند و صفره های گستردند و مال بسیار بر برانها ریختند و یزید گفت یا ام کلسوم این اموال عوضان مسیبت ها که به شما رسید ام کلسوم گفت چه بیشرم و سخت روی مردی تو یزید برادر و مردان خاندان مرا میکشی و به جای آن خواهی ما را به مال دنیا دلخوش کنی به خدا قسم که چنین نخواهد شد یزید ابن زیاد را نزدیک خود بخند و مال فراوانش بخشید و توفه های بزرگ داد و نزدیک خود نشانید و منزلت او را بلند گردانید و او را به اندرون خود برد نزد زنان خود و ندیم کرد و شبی مست با مطرب گفت بخان و به ساقی گفت شروتی هم بده که تا مغز استخوانم ترک کند بعد بگردان جام را و یکی مثل همان که نوشاندم بنوشان به, نوشان به ابن زیاد هم او امین و صاحب اسرار من است و در جنگ و غنیمت اندوختن پشت من به دو محکمه او است اوست که دشمنان و حسودانم را در هم کوبیده است ابن زیاد به مسافر ابن شریح یشکری در راه شام گفت من حسین را به امر یزید کشتم و گفته بود یا او کشته شود یا تو من قتل او را اختیار کردم <تصفيق> چون زنان و ایال حسین از شام بازگشتند و به عراق رسیدند با آن راه که همراه بود گفتند ما را از کربلا ببر مگر ای كربلا خاکه این کربلا خاک بهشتی که انسان تر بو ان بر و چون به قتلگاه رسیدند جابر ابن عبدالله انصاری را یافتند با چند تن از بنی هاشم و خاندان پیغمبر که برای زیارت حسین آمده بود چه زیبرها که زیبه سینه توست چه گوهرها که در گنجینه توست تو در گنجینه داری اد با هم بگریستند و زاری کردند یکی یاقوت خونه حلقه اسبان سیلی بر روی زدند نالهای جنسو سر دادند و زنان قرای مجاور به ایشان پیوستند و چندی بماند درخشد چون سریا در دل شب چو مروارید غلطان عشق زیلم کنار بیرگ سبزی نگون فتاد دست عباس ام چون روی به مدینه داشت میگریست و ابیاتی می که ما را به خود راه مده مدینه جدمان که ما با حزن و حسرت آمدی همه با هم بودیم وقتی از پیش تو می رفتیم اما حالا بیمرد و فرزند برگشتیم بشیر ابن هزلم گفت چون نزدیک مدینه رسیدیم علی ابن الحسین فرود آمد و فرمود بارها بگشودند و خیمه برف راشت و زنان را فرود آورد گفت ای بشیر خدای پدرت را رحمت کند که شاعر بود تو نیز شعر گفتن توانی؟ گفتم آری ابن رسول الله من نیز شاعرم گفت به مدینه رو خبر مرگ حسین را بگوی بر اسب خیش سوار گشتم و تازان رفتم تا به مدینه رسیدم به مسجد رسول خدا در آمدم و آواز به گریه بلند کردم که دیگر مدینه جای ماندن نیست اهالی مدینه حسین کشته شده پس بر او دیده ها گریانند پیکرش خون آلوده در کربلاست و سرش در گردش نیزه ها. و گفتم علی ابن الحسین است با امه و خواهران پیرامون شهر شما نزدیک منازل شما فرود آمده. من فرستاده اویم سوی شما و جای او را به شما نشان می دهم. پس در مدینه هیچ زن نشین نماند مگر از خانه بیرون آمد زاری و شیون کنن. و من ندیدم مرد و زن گریان بیش از آن روز و نه روزی تلخدر بر مسلمانان از آن. و کنیزکی دیدم بر حسین زبان گرفته بود و میگفت بیمار شدم از خبر خبردهنده‌ای که از مرگ مولایم گفت پس بر او ای چشم هایم اشک بریزید و بسیار اشک بریزید و با هم اشک بریزید اگرچه او منزلش از ما سخت دور است گفت ای خبرگزار اندوه ما را برای حسین تازه کردی و زخم هایی که التیام نیافته بود باز بکاویدید از من جدا گشتند و پیشتر از من به دان موضع روانه شدند و من اسب را زدم تا باز گردم دیدم همه جاها و راه ها را گرفتند از اسب فرود آمدم و گام بر گردن مردم نهادم تا نزدیک خیمه رسیدم علی ابن الحسین به درون خیمه بود علی ابن الحسین بیرون آمد و دستمالی در دست داشت سرشک بدان پاک می کرد و پشت سر او خادمی کرسی در دست داشت بگذاشت و او آن نشست و گریه گلوی او گرفته بود و خیشتنداری نمیتوانیست و آواز مردم به گریه بلند شد و زنان و کنیزان ناله و زاری میکردند و مردم از هر طرف دلداری و سرسلامتی میدادند و آن زمین یک فریاد شد پس به دست اشاره فرمود خاموش باشند جوشش آنها فرو نشست. پس علی ابن الحسین گفت سپاس خدای را که پروردگار اهل جهان است و مالک روز جزا آفریننده همه آفریدگان آن که بلند است و بر آسمان های افراشت مستولی و نزدیک است چنان که سخنان آهسته را می شنود. او را سپاس گوییم بر سختی های بزرگ و آسیب های روزگار و آزار مسائب دلخراش و گزش بلاهای جانسوز و مصیبتی عظیم رسوا کننده و رنجاور و بنیادکنو گران ای مردم خداوند تبارک و تعالی و له الحمد ما را به مسائب عظیم بیازمود و رخنه بزرگ در اسلام پدید آمد ابو عبدالله الحسین کشته شد و زنان و فرزندان او اسیر شدند و سر او را در شهرها بر برنیزه بگردانیدند؟ این مصیبتی است که مانند آن هیچ مصیبت نیست؟ کدام یک از مردان شما پس از کشتن او شادی کنند و کدام دل است که برای او اندوهکیین نشود و کدام چشم است سرش که خود را نگاهداری تواند؟ آسمانها به آن سختی برای کشتن او بگریستند و دریاها گریستند با امواجشان؟ و آسمان ها با ارکان و زمین از همه اطراف و درختان با شاخها و ماهیان قوت در انبوه آب دریاها و فرشتگان مقرب و همه اهل آسمان ها بگریستند ای مردم کدام دل از کشتن او نشکافد و کدام قلب برای او ناله سر ندهد کدام گوش است که داستان این رخنه که در اسلام پدید آمد بشنود و کرد نشود ای مردم ما آواره شدیم و رانده و دور از خانمان و از وطن جدا مانند بردگان ترک و کابل نه گناهی کرده بودیم و نه ناپسندی مرتکب شده آنچه با ما شد در گذشته تاریخ سابقه نداشت و بنیادی نداشت مگر تهمت و دروغ و افتراع به خدا قسم پیغمبر اگر به جایان وصیت ها به کشتن ما امر میفرمود بیش از این که با ما کردند نمیکردند. ان لله و انا الیه راجعون آه که چه مصیبت بزرگ و دردناک و دلخراش و تلخ و بنیاد کنیست از خدای چشم داریم اجر این مصیبت را که به ما رسید که او غالب و منتقم است سوهان ابن سعسط ابن سوهان با زحمت برخاست و او زمینگیر بود فریاد زد من برای رنج پای خیش و اینکه راه نمیتوانم رفت نتوانستم با شما بیایم و عذر خواست از تخلف و سخت گریست علی ابن الحسین عذر او را بپذیرفت و نیکو گمانی نمود و شکر گفت و رحمت بر پدرش فرستاد زینب دو جانب در مسجد پیامبر را به دست گرفت و فریاد زد یا جدا خبر مرگ برادرم حسین را آوردهام و زینب هرگز اشکش نمی ایستاد و گریه و ناله سبک نمیکرد و هرگاه علی ابن الحسین را میدید اندوهش تازهتر تر و غمش افزوده تر می گشت. فاطمه دختر علی ابن ابی طالب به خواهرش زینب گفت این مرد نعمان ابن بشیر با ما نیکی کرد آیا بینید که چیزی به وی سلت دهیم؟ و این نعمان ابن بشیر از شام تا مدینه پاس ایشان داشت و چون در منزلی فرود می آمدند، او و همراهان دورتر بار می گشودند و نعمان از هواعج ایشان می پرسید و مهربانی می کرد تا به مدینه در آمدند زینب گفت به خدا قسم که چیزی نداریم جز این زیورها پس دو دست بند و دو بازوبند خیش را بیرون آورده برای نعمان فرستادند و عذر خواستند نعمان همه را بازگردانید و گفت اگر من خدمت شما برای دنیا کرده بودمی ای، این سلط پذیرفتمی ای و مرا کافی بود اما من این خدمت برای خدا کردم و قرابت شما با رسول خدا رباب همسر حسین مادر دخترش سکینه را مهتران قرش و هم یزید در شام خواستند نپذیرفت و گفت پدر شوهری بعد از رسول خدا زیبنده نیست و یک سال پس از آن بزیست و زیر سایه نرفت تا فرسوده گشت و از اندوه درگذشت و بعضی گویند یک سال در کربلا بر سر قبر شوهر بماند پس از آن به مدینه رفت و از اندوه درگذشت علی ابن الحسین چهل سال بر پدرش بگریست روزها روزه بود و شبها به بندگی خدای ایستاده چون هنگام افتار می غلام وی خوردنی و آشامیدنی می آورد و نزد او می نهاد می گفت سید من تناول فرمای می گفت پسر پیغمبر را گرسنه نکشتند پسر پیغمبر را تشنه کشتند و چند بار تکرار می کرد و می گریست تا خوردنی خود را به سرش خویش تر میساخت و آب را به اشک میامیخت و همچنین بود تا به رحمت حق پیوست <تصفيق> یکی از دوستداران و بستگان علی ابن الحسین گفت روزی به صحرا بیرون رفت و من در پی او رفتم او را یافتم بر سنگی درشت پیشانی نهاده و من ناله و گریه او را میشنیدم و هزار بار گفت لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله تعبدا ورقا لا اله الا الله ايمانا وصدقا بر حق و راستی اقرار میکنم که معبودی جز الله شایسته پرستش نیست از روی تعبد و بندگی اقرار میکنم که معبودی جز الله شایسته پرستش نیست از روی ایمان و باور درست اقرار می کنم که معبودی جز الله شایسته پرستش نیست. سر از سجده برداشت و محاسن و روی او را دیدم از سرش دیده تر بود. گفتم، یا سیدی وقت آن نرسیده است که اندوه تو تمام شود و گریه تو کم گردد؟ گفت، وای بر تو، یه عقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم پیغمبر و پیغمبر زاده بود؟ و دوازده فرزند داشت خدا یکی از آنها را ناپدید کرد موی سرش از اندوه سپید و پشتش از غم خم و دیده از گریه کور شد با آنکه فرزندش در جهان زنده بود و من پدر و برادر و هفده نفر از خاندانم را از دست دادم دیدم کشته و افتاده بودند چگونه اندوه هم به آخر رسد و گریه کم شود زنان بنی هاشم پلاس سیاه دربر کردند و از گرما و سرما رنجی نمی دیدن. هیچ زن هاشمی سرمه به چشم نکشید و خضاب نکرد و از هیچ سرای هاشمی دود بر نخاست تا پنج سال بگذشت و عبید الله زیاد کشته شد و روز آشورا را متبرک می شمردند تا قتل حسین در آن روز اتفاق افتاد پس آن را شوم شمردند. و به اندوه می و آمه مردم چیز نو خریدن و نو کردن متاع خانه را در این روز شوم دارند. اما بنی امیه جامعه نو پوشیدند و زیور کردند و سرمه کشیدند و اید گرفتند و ولیمه و مهمانی ها دادند و شیرینی ها و تعام خوشخوردند خوش خوردند و مردم در ایام دولت آنها بر آن رسم بودند پس از آن هم بر آن طریقه ماندند گفتند که سر حسین را به کربلا بازگرداندند و به بدن ملحق کردند و علی ابن الحسین آن را بازگردانید گروه دیگر گفتند یزید آن را نزد امر ابن سعید ابن آس عامل مدینه فرستاد امر گفت هرگز نمیخواستم آن را برای من فرستد و فرمان داد نزدیک قبر مادرش فاطمه دفن کرد بعضی گفتند آن سر در خزانه یزید بود تا منصور ابن جمهور به خزانه او در آمد. آن را در سبدی سرخ رنگ یافت و به سیاهی خذاب شده بود آن را نزدیک باب الفرادیس دفن کرد و آن در شمالی مسجد بزرگ دمشق است که گویا سر را آنجا آویخته بودند بعضی دیگر گفتند سلیمان بن عبد مروان آن را در خزانه یزید یافت و در پنج جامعه دیبا کفن کرد و با جماعتی از اصحاب خود بر آن نماز گذاردند و دفن کردند حتی بعضی گفتند که به قاهره دفن شد و باز گفتند که مردی از شیعیان آن سر را دزدید و آورد و نزدیک قبر امیر دفن کرد و گفتند نزدیک قبر امیر همان همون مسجد هنانه است و باز گفتند در بالای سر امیر دفن کرد شاعری گفت در زمین مشرق یا مغربش جستجو نکنید همه را رها کنید و سوی من آیید که قبر او در دل من است